يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا مبارکه یه جن هست که این سوره هم از سوره های مکی هست از نظر ترتیب چه لومی سوره هست که نازل شد بران حضرت صلی الله علیه و و موضوع این سوره هم مثل سوره های گذشته در رابطه با توحید هست یک تاپرستی هست در این سوره دلیل نقلی از جنات بیان شده روایت از جنات شده که جنات اعلام کردن بعد از اینکه ما قرآن را شنیدیم ولن نشرک بربنا احدا از این به بعد احدی را با ربمون شریک نمی گیریم احدی را شریک خدا غرار نمی دهیم لذا موضوعی این سوره هم مثل سوره گذشته در سوره گذشته در سوره نوح دلیل نقلی از پیامبر الهی بود حضرت نوح علیه السلام و در این سوره دلیل نقلی از جنات هست در ارتباط با جنات و حقایق جنات زیاد در قرآن و سنت نیامده همون ای که ما میخونیم و آمده خدمت شما عرض میکنم که جنات مخلوقی هستند لطیف لطیف به معنی اینکه لطافتشون به اندازه‌ای هست زرافتشون به اندازه‌ای هست که قابل دید نیستند قابل رؤیت نیستند به همین دلیل خیلی هستند که وجود جنات را امروز انکار می‌کنند. در حالی که هم به شواهد عقل و نقل ثابت هست که جنات وجود دارند و جنات در زمین وجود دارند خدا تعالی اینجا سه مخلوق دارد از یکی فرشتگان هستن فرشتگان صافل ملائکه صافل که ماموریتشون در زمین هست کار و وظیفهشون در زمین هست فرشتگان هم لطافت دارند لطیف هستند قابل رؤیت نیستند قابل دید نیستند و جنات هم لطافت دارند یعنی اونها هم قابل رؤیت نیستم مگر اینکه به شکل دیگری خودشون را در بیارم. فرشته هرگاه خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم می آمد به شکل انسان می آمد دو بار فقط رسول الله نه پیغمبران دیگر فقط رسول الله جبرائیل امین را به شکل اصلیش دید دیگه پیغمبران حتی مشاهده نکردند و جنات هم خودشون را اگر نشان بدهند به شکل اصلی خودشون نشان نمی دهند. اما انسان موجودی هست که در وجود او لطافت نیست کثافت هست کیف به معای ناپاک نیست اینجا بلکه بمانایی این هست که انسان را الله و جل طوری آفریده که جسم انسان وجود انسان، قابل رؤیت هست، قابل دید هست، قابل مشاهده است. به همین خاطر ما جنات را مشاهده نمی کنیم، نمی بینیم، اما اونها ما را می بینند. و از نظر تاریخ، تاریخ اونها قبل از انسان ها اون طوری که از قرآنی کریم معلوم میشه، قبل از اینکه ان انسان را خدا تعالی به وجود بیاورد در این عالم وجود داشتند اونها و ملاکه که در رابطه با پیدایش انسان اظهار نظر کردند به همین دلیل بود که مقایسه کردند با فسادی که این مخلوق انجام داد لذا از آن جایی که الله عزوجل آنها را از آتش و شعله آتش خلق کرده حرارت و شیطنت و فساد در اونها غالب هست و جنات بعد از اینکه انسانها متولد شدند بعد از این برای جنات پیامبری مبعوث نشده اما بسیاری از اهل تفسیر نوشتند که غالباً اینا را از اسرائیلیات گرفتند چون دلایلی ذکر نشده که قبل از اینکه انسان ها به وجود بیایند در زمان گذشته در میان خود جنات هم پیامبر بوده اما خداوند عز و جل می و ما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الهیم مردانی را به عنوان پیامبر فرستادیم که از این الا رجالان خیلی از مفسرین استدلال و استنباد میگیرند که پیامبران فقط مرد بودند یعنی نه زن بودند نه جنی بودند فقط مردها را خداوند به عنوان پیامبر میفرستاده علی ای حال جنات را الله عز وجل وقتی که آفرید انسان را وقتی که آفرید اب که عزازیل بود، ابلیس هست، عزازیل هست اسمش به او هم دستور داد به نیابت از بقیه جنات آدم را تعظیم بکند آدم را سجده بکند، ادای احترام بکند فرشتگان این کار را کردند اما عزازیل این کار را نکرد رئیس جنات، کسی که در رأس جنات بود، تکبر کرد غرور از خود نشان داد و این کار را نکرد خداوند او را خطاب کرد ما منعک ان تسجد إذ امرتک من تو را به صورت خاص امر کرده بودم به صورت خصوصی دستور داده بودم چرا سجده نکردی خب اون دلایل خودش را که اون دلایلش مبتنی بر غرور بود بر تکبر بود ذکر فرمود که خدای عزوجل به خاطر اون غرور او را مؤاخذه کرد اما <تصفيق> همه جنات پیروه اون رئیسشون اون کسی که در رأسشون بود که بسیار معتقدن همین ابلیس ابل جن هست همونطور که آدم ابل بشر هست پدر همه جنات ابلیس است. اما بعضی میگن نه این یکی از اونها بود این از بس که عبادت کرده بود به یک جایگاه خاصی از رسیده بود که بعدن اون جایگاهش را خاطر تکبر و تمرد از دست داد علا ای حالن این جنات کارشون شیطنت بود کارشون گمراه کردن انسان ها بود چونکه از اون روزی که سوگند یاد کرد وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ من انسان ها را گمراه می کنم از طرق مختلف انسان ها را گمراه کرد و بدنبال گمراهی انسان ها بود یکی از راهای گمراه کردن انسان ها از طریق عقائد باطل و عقائد شرکیه عقائد شرکیه را تزریق می کرد در وجود انسان ها در درون انسان ها و امروز هم این ام وجود دارد امروز هم شیاطین جن سعی می کنند چون اکثرشون در مسیر انحراف هستند در مسیر شرک هستند در مسیر مذاهب کفری هستند اکثرشون سعی میکنند که انسانها را به انحراف بکشند. لذا انسان های ضعیف عقیده و سست کسانی که ضعیف باشند وقتی که متاثر بند بترسند اونها را رکارهایی نشان میدم به وسیله شیاطین انسی که این انسانها به سوی خرافات برند به سوی شرک برند که اگر فرصتی باشه انشاءالله توضیح میدم. اما در اون زمان در زمان به رسول الله چون میخوام که شأن نزول این سوره را عرض بکنم، در اون زمان اینها با کاهنها، با کسانی که اخبار غیب میدادند، با کسانی که مردم را گمراه میکردند، با اونها در ارتباط بودند، همکاری میکردند و برای اونها اخباری از آسمانها میآوردند. در آسمان ها اگر چی خبر بود اونجا در ملای اعلا فرشتگان وقتی که با هم شورا داشتن با هم تقسیم کار میکردند وظایف را به فرشتگان مختلف محول میکردن اونجا میرفتن استراق سم میکردن دزدکی گوش میکردن و یه چیزی گیرشون میامد میامدن به اون کائنها تحویل میدادند و اون کاهنها، اون کسانی که اخبار غیبی میدادن و ادعا میکردن که ما غیب میدان اونها از این طریق به مردم یه خبری می و مردم را گمراه میکردند مردم معتقد اونها می و دستوراتی که اونها می مردم انجام می دادن علی ای حال بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوض شدند و نزول قرآن آغاز شد تمام این مسیرهایی که جنات از اون مسیرها می رفتند و اخبار می آوردن این مسیرها مسدود شد راه بسته شد هر جا رفتن دیدن که نگهبان هست ورودی ها بسته هست فرشتگان استادند و نگهبانی میدن و راهی برای رفتن به ملای اعلی و به آسمان ها وجود ندارد با هم نشستن گفتن چه خبر؟ معلوم میشه که جنات غیب نمیدونن بسیاری اوقات هستن که جنات ادعا میکنن ما غیب میدونیم از اینجا معلوم شد که از حدیث در حدیث آمده که ابلیس جمع کرد و گفت که بررسی بکنید شیعاتین همه جمع شدن بررسی بکنید تحقیق بکنید چه اتفاقی افتاده گایی یک اتفاقی میفته راها بسته میشه مرزا همیشه بازه مردم داد و سدد میکنن مردم رفت و آمد میکنن اما اتفاق میفته کلا مرزها رو میبندن هیچ که نمیتونه رد بشه لذا اینا گفتند لابد اتفاقی افتاده که هیچ کسی نمیتونه تردد بکنه راها را بستند نمیذارند. بری شما بررسی بکنی چه خبره لذا جنات متفرق شدند گروه های مختلفی رفتند اطراف و اکناف بگردند ببینن چه خبره یک گروهی از جنات که میگوین جنات نصیبه این بودند یعنی اسم تیره و قبیلشون هست اینها معمولیتشون به سرزمین حجاز بود سرزمینی که حرمین شریفین اونجا هست اینها وقتی که آمدند این درست زمانی بود که یه جایی به نام عکاز یه بازارچه یک نمایشگاه عرضه کالا اونجا برگزار شده بود مردم همه جمع می شدند که کالا های خودشون را بگیرند در اون فصل کاروان ها از یمن از شام از بلاد مختلف وسایل می آوردند و مردم جمع می شدند رسول مکرم صلی الله علیه و سلم این فرصت را مختنم دانستند گفت همه مردم جمع هستند بریم اونجا پیام رب را به اونها برسونیم و اونها را دعوت بدم سوی خداوند به سوی توحید به سوی یکتاپرستی اینجا بود که رسول الله صلی الله و سلم وقت سحر صبح زود به سوق عکاز بازار عکاز با از اصحاب حرکت کردن از مکه مکرمه قبل از نماز رفتن نیمه شب رفتند در مسیر یک وادی بود به نام وادی نخله اونجا وقت نماز صبح رسید و رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز و امامت کردند صحابه پشت سریشون ایشون اقتدا کردند و در نماز آیات قرآن مجید را تلاوت می کردن. همین زمان بود و همین لحظه بود که گذر جنات از همین وادی افتاد و اینها شنیدن یک صدایی هست و یک زمزمی هست آمدن نزدیک گوش کردند دیدن سبحان الله این کلام یک کلام عجیب هست یک قرآن بسیار زیبا هست قرآنی هست که انسان را به وجد در میاره آیات رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت می کردند که معلوم میشه در اون آیات هم ذکر توحید بود، نفی شرک بود در آیات مکه مکرمه همه این آیات بود لذا این جنات بدون اینکه رسول مکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات بکنند رفتند از همون جا ایمان آوردند رفتند پیش قوم قبیله خودشون و گفتند ما قرآن عجیبی شنیدیم که انسان را راهنمایی میکند به سوی ایمان به سوی راه موفقیت لذا ما ایمان آوردیم ایمان آوردیم به این معنا هست که از این به بعد ما با خداوند احدی را شریک نمیکنیم لذا شما هم ایمان بیارید قوم را دعوت دادند این آمدنشون را ابتدان الله از ذوال جل به پیغمبر خبر داد آیات سوره مبارکه احقاف که شما خاندید اون آیات نازل شد و بعد از اون سوره جن کامل نازل شد در این سوره جن به صورت کامل خدای عز و جل سخنرانی جنات را بیان فرموده ای که این جنات برای قومشون داشتن این موعظه حقیقتا برای ما موعزهی هست و این موعظه را که قرآن مجید الله عز و جل برای ما روایت و نقل فرموده این حاوی نکات ایمانی و نکات اعتقادی هست که توجه همه ما را به این نکات می تلبد. ابتدا ببینید که چی گفتند اونها. قل اوحیه الیه، ای پیامبر به امتت بگو، به مؤمنان بگو اوحیه الیه بسیم من وحی شده. انه استمع. این اوحیه الیه انه استمع از این آن نتاب پانزده آیه پانزده چیز را. ذكر ميفرما اوحيا إليه أنه استمع اوحيا إليه أنه تعالى تعال. أوحي اوحيا إليه أن ظنن تهمينها همينها برهم اوحيا إليه مرتب هستن بر أنه استمع بمن واحد شده أنه استمع نفر من الجن استماع كت جماعة نفر نفر السطاة نهتار ميگوين بسيار متقيدن هف نفر بودن از جنات استماع کردند گوش کردند کلام رب العالمین را بعد از اینکه گوش کردند و متوجه شدند فقالو ان سمعنا قرآن عجبا آنها به قوم خودشان گفتند که انا سمعنا ما شنیدیم قران عجیبی قرآن عجیبی اون جنات درک کرده متوجه شدند از آیات سوره مبارکه احقاف معلوم میشه که این جنات بر دین سیدنا موسی علیه سلام بودند چونکه گفتن کتابا اون ظلم من بعد موسی کتابی که بعد از موسی نازل شده یعنی بعد از کتابی موسی نازل شده معلوم میشه که اینها عالم به تورات بودند از تورات اطلاعاتی داشتند و قرآن را هم با توجب به همخانی و همه هنگیه که با اون کتاب آسمانی داشت تشخیص دادند شناختند لذا چی گفتند؟ ان سَمِعْنَا قُرْآنًا عجبا ما شنیدیم قرآن عجیبی شنیدیم اسی جهتش عجیبه هو عجب فی نفسه لفصاحة کلامهی وحسن مبانیهی ودقت معانیهی عجیب هست چون کلامش بسیار فسی و زیباست. شیرین مبانیش بسیار زیبا هستند معانیش بسیار دقیق هستند و درست هستند و اسلوبش بسیار غریب و عجیب هست و مواعظش پند و نصیحتهایش اندرزهایش بسیار مؤثر هستند تأثیر هستند لذا ما چنین قرآن عجیبی شنیدیم یهدی الار رشد فآمن نابه این قرآن انسان را راهنمایی میکند می کند به راه هدایت رشد اون راهی که انسان را به خدا برساند قرآن انسان را خوب راهنمایی میکند می کند لذا ای جنات دیگر شما شاهد باشید فآمننا به ما ایمان آوردیم به این ولن نشرک بربنا احدا این ایمان است خیلی از ما میگویم ایمان داریم ولی ایمان ما آمیخت با شرک است ایمان ما از یک طرف میگیم خدا را به یگانگی قبول داریم از یک طرف از غیر خدا استمداد می کنم از یک طرف میگیم خدا را به یگانگی قبول داریم از یک طرف برای غیر خدا نظر و نیاز می دهیم میگیم که این برای خوشنودی فلان بزرگوار فلان ولی فلان پیر این بالاخره ایمان آمیخته با شرک است از یک طرف ما میگیم نه ایمان داریم از یک طرف میگیم یا رسول الله اغثنا ای رسول الله تو به فریاد ما برس ای فلانی تو دست ما را بگیر لذا این ایمان به درد نمیخوره عزیزان ایمانی که در اون شرک نباشد این میگی این آمنا به ولن نشرک بربنا احدا هرگز با رب من احدی را شریک نمی کنیم ببینید نگفتن ولن نشرکه بربنا سنمن بسیاری از کسانی که دنبال خرافات هستند اهل خرافات هی توجیه می کنند شرک مشرکین قدیم را میگن اونا بود پرست بودند اونا بود عبادت می کردند ما اگر کمکی می خواهیم استمدادی میکنیم، کنیم فریادی می از اولیاء خدا از دوستان خدا از انبیاء الهی نا اینجا ببین اونا نکفتن ولن نشر که بربنا سن من ما بطی شریک نمیگن ولن نشر که بربنا احدا کسانی که عربی بلد استن میدونه که احد برای زویل و قول بکار میبره یعنی هیچ کسی را هیچ احدی را هیچ شخصیتی را هیچ فردی را نا ای را نه نبی را نه ولی را نا امامی را هیچ کسی را ما با خدا شریک قرار نمیدهیم لذا اگر ما این بندگان صالح خدا را که قطعاً بسیاری از بندگان بندگان خاص خدا هستند اصفیه هستند اتقیه هستند اولیا هستند اما به اینها ما صفات خدایی بدیم بگیم اینها غیب میدونند بگیم اینها میتونم به من فرزند بدند بگیم اینها میتونن مشکل من حل بکنند خب این صفات خدا به اونها دادیم شریک گرفتیم زا اونها گفتن ولن نشرك بربنا احدا و دیگه اونها جنات در ادام ادامه ادامه سخنرانیشون و انه تعالی جد ربنا همان برتر و بالا ذات پروردگار ما خداوند از مخلوق خیلی بالا است ما خود رو مقایسه کردیم با مخلوق مخلوق را مثل خدا قرار دادیم متخذا صاحبته و لا ولدا این مخلوق از انسان است که نیاز به همسر داره نیاز به فرزند داره اگر داشت نباشه همون پیغمبر هم وقتی فرزند نداره دعا میکنه میگه رب هبلی من الصالحين ابراهیم دعا میکنه رب هبلی من الصالحين زكريا دعا میکنه رب لا تذرنی فردا و انت خير الوارثین هر پیغمبری را که خداوند عزوجل نیازی داشته باشه حکایت میکنه چطور خدا را فریاد میزنه انسان ها همه نیاز دارن نیاز به فرزند داره میگه پیغمبر خدا میگه فردا وارث من بشه وارث مال نه وارث این دعوت این مسیر این نهضتی که من دارم لذا نیاز داره به فرزند نیاز داره به همسر اما خداون نه نیاز نداره ماتخذ صاحبتن ولا ولدا نه همسر گرفته و نه اولاد این در واقع رد هم مشرکین است هم نصارا است هم یهودی هاست یهودی ها میگفتن عزر فرزند خداست نصارا میگفتند عیسی فرزند خداست مشرکین میگفتند که فرشتگان دختران خدا هستند میگفتند که خب دختران خدا هستند مادر این فرشتگان کی هستند میگفتند دختران سرات جن سرداران جن و بزرگان جنات اونها علیه یوسف الله با خدا وصلت کردن دختران یعنی خودشون را دادن به عقد خداوند از اونها فرشته متولد شده چنین خرافاتی داشتند این در واقع رد اون خرافات است که متخذ صاحبه ولا ولد خداوند نه همسری برای خودش انتخاب کرده و نه فرزندی برای خودش انتخاب کرده و انه کان یقول سفيهنا علی الله شطط همانا بودن در گزشته آدم های و نادان ما که بر خدا میگفتن شططن شططن یعنی حرف اضافی شطط میگن هو بعد و مجاوزت الحد یعنی انسان از حد وقتی که بگذرد مبالغه بکند اون را میگن شطط در رابطه با خدا خیلی مبالغه میکردند برای خدا چی چیزهایی را ثابت میکردند اینا همه خرافات بوده ما نمیدونستیم وانا ظنننا ما تبهال فکر میکردیم الان تقول الانسان والجن على الله كذبا هرگز انسان و جن بر خدا دروغ نمیگه ولی الا متوجه شدیم نا تابحال به ما خیلی دروغ گفتن خیلی دروغ تحویل ما دادند از همین دروغها عقاید ما فاسد بوده ایمان ما ناقص بوده ایمان ما خراب بوده و انه کان من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا و همسین وای شده بمان که اون جنات در ادامه گفتند که مردانی از انسانها در گذشته بودند که پناه می بردن به مردانی از جنات پناه بودند به مردانی از جنات این جنات چکار کردن؟ اون انسان ها را که گمراه بودن گمراه تر کردن فزادوهم رحقا این افزودن این جنات در اون انسان ها از نظر گمراهی این را چند بار خدمت شد شما توضیح دادم که جنات خودشون برای انسان ها فراهم می آوردند انسان ها را می ترسوندند وحشت وجودی اونها ایجاد میکردن و بعد بهشون یاد میدادند که اگر ما را صدا بزنید از ما کمک بطلبید مشکل شما حل میشه لذا انسان ها چیکار میکردن از جنات کمک میخواستند گاه گاهی که سفر میکردن سفر تو جنگل بیابان یه جایی میخواستن استراحت بکنند اون زمان مسافرخانه یا هتل شهری چیزی نبود تو بیابون میخابیدند جنات اذیت میکردند سر و صدا میکردند و میترسندند وقتی که این انسان ها یک ورد مخصوصی میخاندند که تو اون ورد پناه میبردند به سرات جنات و به سرداران جنات بعد ازیتشون نمیکردند مثلا تو کتاب ها آمده میگفتند عوضو به سید حاض الوادی من شر صفحای قومه که معنیش اینه که من به آغای این وادی، سردار و پادشاه این وادی پناه میبرم، به او پناه میبرم که مرا نجات بده از شر نادانهایش که منادانهایش من مرا اذیت میکنند. وقتی که اینا می خوند اون کسی که در راست بود، دستور میداد به تمام افرادش با این کارداشتنه باشه. اینطور انسانها در امان بودند. و الا اگر این کلمات شرکیه را نمیخواندند به اون جنات پناه نمی بردند اذیتشون میکردند این صورت تعوذ بود یکی از صورت های تعوذ امروز هم بسیاری از افراد مریض میشن خیلی از کسانی که جنات اونها را اذیت میکنند این را خدمت شما بگم که بیشتر کسانی اذیت میشوند و کسانی مریض میشن که دو تا مشکل داشته باشند یکی از نظر اعتقادی و باور و ایمانی ضعیف باشند و با آیات قرآن و با قرآن سرکار داشته نباشند اینها را اذیت می کنند کسانی که هی میترسند و بلاخره انها را نافع و ظار می دونند اما اگر انسان راسخ و العقیده باشد عقیدش محکم باشه و همیشه با قرآن و تلاوت کار داشته باشه همون طور که سنت هست هر شب که میخوابه معوزتین را میخاند که این معوزتین اصلا نازل شدن برای همین که ما به خداوند پناه ببریم اون زمان انسان ها به جنات پناه میبردن ما میگیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس من پناه میبرم رب فلق و صبح من پناه برم به رب الناس اون وقت رب الناس مرا حفاظت میکند در پایان می من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس از جنات از انسان های متمرد و سرکش از انسان هایی که همه شیطنت میکنند و سعی میکنند برای انسان دیگه مشکل درست کنند هی hey, جادو میکنه، هی hey, دنبال میکنه مردم را از شر اونها پناه میبرم وقتی که هر شب اینها را بخونی خدا از محفوظ میکنه هر شب آیه کرسی را بخوانی، هر شب سوره ملک را بخوانی، در خانهی که سوره ملک خانده بشه اونجا جن جرعت نمی کنه که را پیدا بکند لذا کسانی که اعتقادشون باورشون قوی باشد و با قرآن سرکار داشته باشند اونها راضیت اذیت نمی‌کند دوم کسانی که از نظر جسمی هم مریض میشند. خیلی وقت میشه کسی مریض ملا میگه که ببینین پیش دکتر نبری این غلطه این یک اشتباهی بزرگی هست چرا چون در حدیث ما داریم که جنات در جاهای آباد و در جاهایی که اونجا همه چیز هست نمیتونن برند جاهایی میرن که خراب باشه گند باشه ها باشه خلوت باشه همچنین در وجود انسان اون جسمی که سالم باشه اون جسمی که هیچ مریضی ظاهری در زیاد تسلط ندارند بیشتر شما دقت بفرمای کسانی که از نظر جسمی مریضن زخم معده داره مشکل معده داره ناراحتیه اعصاب داره درونش مشکل داره بیشتر بر اونها مسلط می شوند چونکہ جاهایی که ترتمیز باشه سالم باشه بسطلاح آباد باشه اونجا زیاد خوش نداره زیاد علاقی نداره لذا وقتی که بر انسانها مسلط میشن، گاهی گاہی می بینیم یک اهل خانواده تمام وضعشون خراب شده اینها را اذیت میکنن تا اینها مراجع بکنن به پیش همون کسانی که موکل این جنات هستند پیش اونها برند اونها هم هم نوائی می رسند هم پولی دریافت میکنند که سیر میشه و هم راههای انحرافی را بینها نشون میرند ما دقت بفرمایید خیلی ها شاید هستند که آیات الهی را استفاده میکنند اما بسیاری هستند که از اورادی استفاده میکنن که در این اوراد کلا شرکه ما در مقدمه در عرض کنم که معرف و توحید خاندیم اورادی اذکار مثل یا رفتمائل یا درد مائل هیچ معلوم نیست اینا چه اسمهای مبهمی هستند بعضی میگن اینا اسامی جنات هستند اونها را استمداد میکنند شما به مداد ما برسید گایی بعضی تعویزات نوشته میشن نگاه میکنید سبحان الله اینها همیش استمداد از غیر خداست استمداد از یک سری ارواح ای هست که اصلا شما با نامشون عاشنا نیستید لذا این مریضی ها را اینها میارند بر انسان ها و بعد انسان ها را مجبور میکنند که انسانها ها بعض به اهمینات پناه ببرند گرفتار شرک بشند استاد بزرگوار مولانا محمد یوسف حفظ الله که چند روز پیش هم آمده بودن قبلا هم یک واقعی بیان کردن که یک مریضی بوده در کوئیت پاکستان که این مریض همینطور تسلطی شده بر اون سحر و جادوی هم شده چنان که هر جا برده این مریض خوب نشده آخر گفتن تنها راهش اینه یک جادوگری هست تو هندوستان هندو هست اونجا پیش او ببرید و مسلم هندو که جادو میکنی یا تلس را میشکند به وسیل شرک و اوراد شرکی هست در جادو ما قبلا خاندیم در سور بقر دو چیز هست حتما یکی اینکه اون جادوگر متوسل به نجس میشه به چیزای گند میشه و دوم حتما متوسل به استمداد و استعانت از غیر خدا میشه استعانت از ارواح خبیثه میشه لذا مردم را مجبور میکنند که هم مالشون بره هم ایمانشون بره بنابر این نباید انسان به اینها پناه ببره نباید انسان اول اینکه مریض بشه گاهی بعضی میگه خب ما چیکار بکنیم صبر کن چیکار میکنی اگر برای کسی خداوند مریضی سرطانی بیاره چیکار میکنه حتی موتش مقدره مریضی را تحمل بکنه سختی را تحمل بکنی ولی پیش این شیادانی که هم جان می و هم مال میگیرن کاش فقط مال را میگرفتن هم ایمان انسان را میگیرن نباید انسان بره باید بازار اینها تحتیل بشه ولی متاسفانه بازار اینها خیلی گرمه مردم اطلاع ندارن صف این پیش اینها میرن و اینها کلی بازارشون را گرم کنند و بماند که برای مردم چیزهای منویسند و چیزهای بخور مردم میرند که مردم گرفتار خرافات میشن گرفتار شرک میشن ولی نمیدونند لذا این جنات کارشون همینه میگفتون و انهو کان رجال من الانس مردانی از انسانها بودند یعوزون برجال من الجن پناه میبردن به مردانی از جنات فزادوهم رحقا این جنات در چی اضافه کردن؟ در گمراهیشون اضافه کردن و بعضی گفتن فضادو هم فائل رجال انس است هم مفعول رجال جن هست یعنی انسان ها در گمراهی جنات اضافه کردن یعنی جن از قبل گمراه بود ولی انسان وقتی که به او پناه میبره اون تو دلش میگه من شدم خدا من معبود شدم الان مرا عبادت میکنن برای من گزفن میکشند مرا فریاد میزنند لذا او گمراهیش از قبل گمراه بود گمراهی چی میشه بیشتر میشه و انهم ظنوا کما ظننتم الا ان یبعث الله احدا همانا این انسانها ها داشتند فکر میکردند همان گونه که شما فکر میکردید الا ان یبعث الله احدا خداوند هیچ کسی را به عنوان پیامبر مبعوث نمی کند نه نبی نه رسولی ما فکر می کردیم انسان ها ولی الان متوجه شدیم نه نبی آمده پیامبری آمده خب از کجا فهمیدید الان اون کل جریان را تعریف می کنند و انا لمسنا السماء همانا ما مس می کردیم دست می زدیم آسمان را می رفتیم به سوی آسمان فوجدناها ملعت حرصا شدیدا و شهبا می اون آسمان ها را که پُر شده از حراس، از محافظ از نگهبان ش... با شدت حراست میکنن و شهوبن پر از شهاب شده شهاب از کنم همون جرقه هایی همون شلیک هایی که به سوی جنات میشدن هر جمعی رفتیم میدیدیم که شلیک شد به سوی ما نمیدونستیم چه خبر است قبل از این ما چه کار میکردیم و اننا کنا نقعد منھا مقاعدا للسمع همانا مابود می نشستیم در آن آسمانها جاهایی برای استماع کردن برای گوش کردن یه سری جاهایی می نشستیم از اونجا گوش میکردن فرشتها چه میگند اما الان نه فمن یستمعی الان یجد له شهاب رسده هر کسی الان گوش کند اون برای خودش می بیند یک شهابی که رسدن او را رسد میکنه دنبال میکنه تعقیب میکنه میزنه او را پودر میکنه ببینید یک نکته دیگری هم خدمت شما ارز کنم که این جنات که به آسمان ها میرند اینا رو در واقع افرادی از انسان ها مسخر کردن یک سری اوراد و چیزهای خاندن که اینا رو تابع خودشون کردن و این جنها را در واقع حبس کردند، زندانشون کردند. خب فوتهایی هست تو این دنیا که افرادی انجام میدند و بعد جنات را تابه خود قرار میدند و از این جنات کار میگیرند ولی بعضی وقتها بعضی از علماء جوان میپرسند که آیا این درست هست مشایخ ما توصیه میکردن این مسیر نروید بعضی میگن ما سو استفاده نمی کنیم ما در جهت خدمت به مردم ولی این جنات چنان ضربه میزنند که انسان خودش متوجه نمیشه به خود انسان ضربه میزنند به خانواده انسان ضربه میزنند پیامبر خدا حضرت سلیمان که انشاءالله ما می ما میخوانیم در سوره های مختلف داستانش را حضرت سلیمان جنات را تابع و مسخر کرده بود خداوند در اختیار و قرار داده بود یک سری از جنات را نتوانست از اونها کار بگیره اونها را به زنجیر بسته بود چور اینها تمام کسانی بودند که دنبال جادو و جادوگری بودند بعد از اینکه سیدنا سلیمان وفات کرد جنات آزاد شدند اینها چقدر فساد کردند در زمین و خود سیدنا سلیمان را بد بدنام کردند که تا به امروز یهودیت معتقد سلیمان پادشاهی بوده که به وسیله تلس پادشاهی کرده به وسیل جادو پادشایی بکرده قرآن سلیمان دفاع کرد گفت وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفر و یعلمون الناس السحر لذا سلیمان را بدنام کردن سلیمان از اینها کار دینی نگرفت کار بنای گرفت مسجد الاقصار را درست کردن اینا را به عنوان غواص در قعر دریا استاد و یه سری جواهراتی برای سلیمان می آوردن که حکومتی داشت نیاز به اقتصادی داشت علا ای حال سلیمان را هم اینها بعد از وفات سلیمان زر برا به سلیمان زدند. لذا اینها هیچ کسی را نمی با این افراد اینو شغل اصلا سروکار داشته نباشید بعضی ها. اینها ان رو میگه عامل. میرن جاهای بعضی مردم میرن پاکستان آموزش میبینند. یک چلی میگذارند. بعدا میتونی یک بخشی از جنات را تابع خودشون بکنند. و بعدیم این جنات چکار میکنند؟ توجه فرماید اون چی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید اینها میرند اخبار میخوان بیارند اخباری از غیب برای این کسی که تابع او هستند بالاخره اینها وقتی که میروند از اون طرف میایند یک خبر درستی دی شاید گیرشون بیاد یا اونجا استراق سم می میکنند گوش میکنند خبری به سمعشون میرسند یا در همین اطراف و ماحول خودمون خبری میارن برای اون کسی که اینها رو مسخر کرده برای اون کاهن یک راست میارن چون شیطانه تو تمرد در اینها غالب هست رسول الله صلی الله علیه و سلم 99 تا دروغ دیگه تحویلش میدند اون چیکار میکنه به مردم اونها رو تحویل میده مردم چون مردمی که مشکل دارن پیش اونها میروند یا آقایی هست ماشینش گم شده یکی دیگری هست که تلاش گم شده لذا یک نشانی شاید درست ازش بگیره ولی بقیه همه دروغ خیلی مردم را به جان هم مندازند کسی را گفتند که تلاشت را پدرت دزدیده به کسی دیگه گفتند برادرت دزدی کرده این اتفاقات همیشه جلوی ما افتاده و میفته لذا یک نشانی فلان پرائد هست فلان موتور هست فلان ماشین هست این نشانی درسته خب اینجا اونها پیرامون میگردن میبینند بقیه همه دروغ هستند آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی که پیش کاهینی میره هر کسی که پیش کاهینی میره و بعد او را میکنه حرفایش را چون اون داره اخبار غیب میده او را تهیید میکنه. این انسان در واقع به قرآنی که بر محمد ناظر شده خوف کرده. الله ای بالله الله. به خاطر اینکه قرآن میگه که بغیر از خداوند کسی غیب نمیدانه کاهن در اخبار غیب میده. اینم تایید میکنه. لذا هر مشکلی پیش میاد پیش این افراد. هر کسی هم نتیجه نگرفته. پیش این افراد ما باید بریم. اینها برای هم جان ما خطر داره هم مال ما خطر داره هم ایمان ما خطر داره لذا اینها می و انا لمسن السماء ما آسمان را وقتی که می رفتیم و داخل می در آسمان فوجدنا هم ملعت حراسا شدیدا ما یافتیم وقتی لمس کردیم وقتی احساس کردیم که پر از حراس هست پر از نگهبان هست و شهوبم پرست شهاب هست که ما دنبال میکنند و انا کنا نقعد منها مقاعد لسم ما بودیم قبلا می نشستیم برای گوش کردن اما الان نا فمن یستمع الان یجد له شهاب رسده هر کسی الان گوش کند برای خودش یک شهابی را می بیند یک عرض کنم که آتشی را می بیند که او را دنبال میکند تعقیب میکند و انا لا ندري قبل از ایمان نمیدونستیم اشر اريد به من في الارض ان تمام راهای آسمانها مسدود شده آیا شری اراده شده برای اهل زمین ام اراده بهم ربهم رشده خداوند نسبت به اونها اراده هدایت و ایمان دارد الان فهمید خداوند نیت خیر و اراده خیر دارد چون چنین پیغمبری مبعوث شده وَأَنَّا مِنَّا و وَمِنَّا دون ذلك قبل از این پیامبر بسیاری از ما صالحین بودیم و بسیاری از ما غیر صالحین بودیم کننا ترائق قددا ما بر روشهای مختلفی بودیم حلوزم هم جنات همین طور بسیاری از جنات هستن مسلمانند بسیاری یهودیان بسیاری مجوسی و آتش پرستند بسیاری هندو هستند سیک هستند هر نوع جناتی الان وجود دارد و آن ذنننا، آلا الله لذا این جنات بیانها گفتند که ای جنات، ما الان یقین کردیم ذنننا به معنای علمنا به معنای ما الان می الان یقین کردیم که آلا نعجیز الله في الأرض، ما خدا تعالی را نمیتونیم دونیم کنیم در زمین از پیش خدا بگریزیم. ولن نوعجسه او هربا ما هر گزور آجز نمیتونیم بکنیم از روی فرار کردن فرار بکنیم خدا نتونیم ما را بداس بیار نه یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفزو من اقتار السماوات والارض تنفزو لا تنفزون لذا ما نمیتونیم فرار بکنیم به این خاطر ما بیایم تابع دستور خدا بشیم ما از این به بعد شرک نکنیم و لما سمعنا الهدى آمنا به ایمان خودشون رو برای بار دوم اعلام میکنن و انا لما سمعنا الهدى همانا ما وقتی که این هدایت را شنیدیم ان قرآن را که سراب هدایت از شنیدیم آمنا به ما به ایمان آوردیم فمن یؤمن بربه هر کسی بربش ایمان بیاورد فلا یخاف بخسا ولا رهقا او نمیترسد از بخس و رهق از کمی و از اضافی یعنی چه بخسن فی الحسنات در حسناتش کم بود نمیاد راحقن اضافه في سيئات هر چی گناه کرده گناه اضافه نمیشه همون اندازه لذا هر کسی ایمان بیارد نترسد وان نا من المسلمون و من القاسطون اما بعضی از ما مسلمانانی منقادم طابع فرمان رب هستیم و من القاسطون بعضی از ما بی انصافی قاصد کسانی که ظلم میکنن ای المشرکون الظالمون فمن اسلم فاولائك فا تحروا الرشاد هر کسی کے اسلام آورد هر کسی کے تسلیم پروردگار شد فاولائك فا تحروا الرشاد این گروه این افراد یافتن راه هدایت را این اینها راه هدایت را پیدا کردند یافتن دی راه ایمان را اما کسانی کے راه ظلم و راه شرک را ببرند واما القاسطون فكانوا لجحنم حطبا اما كسانيك ظالم باشن مشرك باشن انها ج... انها تشي مشون فكانوا لجحنم حطبا انها اخغرها يجهنم مشان مشند انها زغال روشن يجهنم مشان والا واستقاموا على الطريقه لاسقيناهم ما انغدقا تا انجا سخنرانی جنات بود بعد از این التفات رب العالمین از بسوی اهل مکه حال روی سخن بر به اهل مکه خداوند به اهل مکه میگه و آلا استقامه على طریق همانا اگر اینها استقامت بکنم بر طریقه بر طریقه یعنی بر ملت توهیدیه بر ملت توهید و ایمان اگر اینها استقامت کنند لاسقیناهم ماء غدقة ما اینها آب میذم آب فراوان یعنی چه یعنی خداوند میفرماید ما رزق و نعمت فراوان بیشون اثام میکنیم ل هم فی فیثا بیازمایم اونها را در این مسئله اما هر کسی که هر کسی که ایمان نیاورد از توحید روی گردانی کند از قرآن روی گردانی کند از دعوت رسول الله روی گردانی کند خداون او را میبرد بر عذاب بسیار سخت من یعرد عن ذکر ربه هر کسی ایراد کند از ذکر پروردگار ذکر پروردگار قرآن است قرآن تعلیم توحید و یکتا پرستی داده یسلک هو عذابا صعدا او را می برد و می پیماید بر عذاب سخت سعود میگویند گویند عذابی که انسان را در جهنم تو آتش مجبور میکنه یک سربالایی کوی بره بالا و وقتی که نمی تونه از یک طرف درد و رنج عذاب از از یک طرف این بالا رفتن هست با تازیانه و شلاق می زنن که برو بالا لذا یسلک و عذا من سعده او رمی برد در عذابی که بالا بره یعنی شاق سخت و المساجد للا فلا تدعو مع الله احدا و دیگه سجدها همه برای خدا ان المساجد را قبلا ہم در مقدمه تفسیر کردم ارز کردم چندین تفسیر داری یکی اینه که ان المساجد اقسام سجدها همه سجده ها برای خدا وقتی که سجده ها برای خدا هست نباید غیر خدا را سجده کنید فلا تدعو الله احدا شما صدا نزنید فریاد نزنید همرا با خدا کسی دیگر را فقط خدا را فریاد بزن یا رب بس دیگه کسی نه و چون سجده و دعا با هم دیگه ارتباط دارند بهترین دعا اون دعایی هست که شما در سجده می کنید رسول الله صلی علیه و وسلم گاهی در سجده قرار می گرفتند تا دیر وقت دعا میکردند. کردند لذا برای خدا سجده کن فقط خدا را صدا بزن فریاد بزن کس کسی دیگه کمک نخواه این بهترین دعا هست که به اجابت نزدیک تر است و یکی دیگر از معانیش ان المساجد مساجد جمع مسجد هست یعنی محل سجده جاهای سجده جاهای سجده همه برای خداست ببین در دین ما تمام زمین جاهای سجده ادیان گذاشته نه در دین یهودیت مسیحیت عبادت تو خونه جائز نبود باید عبادت را تو عبادت خانمی خانده رسول الله صلی علیه و وسلم چند تا از امتیازات خودشون را و ویژگی های خودشون را بیان فرمودن در حدیث هست یکی از اونهاست جو علت لی الارض و در دین من همه زمین مسجده برای من هر جا شما سجده کنید سجده شما درسته هر جا نماز بخانید نماز شما درسته اما اونها نه بعد از این که فران نمی تو عبادت خانه ها نماز تو قرآن داریم خدای از و به موسی گفت که خانه هایتون را مسجد قرار بدید لذا بغیر از عبادت جای دیگه برای اونها جایز نبود اما دین اسلام نه تو بیابان باش هم مسجدت اونجاست تو جزیره باش مسجدت اونجاست تو خونه باش مسجدت اونجاست هر جا میتونید سجده بکنی لذا تمام جاهای سجده مال خدا هستند لله اختصاص به خدا دارند با خدا کسی دیگر را شما شریک قرار نده و بعضی گفتم مساجد جمع اسم عاله هست اسم عاله هم جمعش مفائل میاد اسم ظرف هم از جمعش مفائل میاد بر اساس این تقریر دوم دو اسم ظرف بود بر اساس این سوم سو مساجد اسم آله هست. جمع مسجد هست. مسجد یعنی آله که شما با او خدا را سجده می کنید ما با چی خدا را سجده می کنیم هفت تا عضو هستن دو تا دست دو تا پا دو تا زانو و یک چهره اینها مال خدا هستند اینها اختصاص به خدا دارند یعنی اینها را برای کسی دیگه بکار نبرید سجده با اینها برای غیر خدا نکنید همین توجیهات رو و همین سورتها رو ذکر کردم و ان المساجد لله فلا مع الله احدا و انه لما قام الله و همچنین به من واحی شده که هرگاه بنده از بندگان خدا قیام میکرد که یدعوهو او را صدا میزد علیه جن و انس نزدیک بودن بر علیه او چی بشن لبدن لبد حجوم را میگن ازدهام را سر بسر یعنی مردم همه حجوم می آوردند تا دعوت او را چی بکنند؟ بی اثر بکنند ببینی این آیه هم دوتا تفسیر داره یک تفسیری که عامه مفسران می کنند اون تفسیر اینه که هرگاه بنده ای از بندگان خدا مثل رسول الله صلی الله علیہ وسلم مثل ایسا مثل موسی مثل سیدنا نو هرگاه بنده ای از بندگان خدا قیام کرده که مردم را به سوی تویید دعوت کنه همه شیاطین جن و انس بر علیه او بسید می شدن تا دعوت او را بی اثر بکنن. مردم از او متأثر نشون مردم به سویی او نروند معنای اولش اینه چنانچه تفسیر مذهبی گفته الا معناه على ما قال الحسن حسن باصری قتاده ابن زید گفته انه لما قام عبد الله بالدعوه الى التوحید بنده خدا وقتی قیام کرده و دعوت به توحید داده کاد الجن والانس يكونون مجتمعین لابطال امره جن و انس جمع شدند تا امر او را باطل کنند یعنی دعوت او را بی اثر بکنند اما شعب عبدالعزیز رحمه الله که از مفسران بنام هست فرزند شاه الله ایشون یه ای تفسیر دیگه و ای یک معنا دیگری بیان کرده ایشون میفرماید هرگاه بنده از بندگان خدا قیام کرده و برخواسته که مردم را به یک تاپرستی دعوت بکنه به سوی توحید به سوی شرک مردم شیاطین جن و این کردند به دلیلی اینکه او خیلی خدا را خودش عبادت میکرده ذکر میکرده یاد خدا میکرده مردم او را در کارخانه الهی دخیل میدانستند و بعد از اینکه او فوت میکرده برای حاجات خودش به خود او حجوم میاوردند یعنی این شیطنت جنات بود مثلا عیسی علیه السلام دعوتش چی بود توحید بعد از اینکه عیسی رفت خود ایسا را گفتن عبادت کنید رسول الله دعوتش توحید بود بعد از اون گفتن خود رسول الله را فریاد بزنید او را عبادت کنید شیخ عبدالقادر جیلانی بقیه بزرگان اینها بردار توحید بودن اما بعد از اینکه وفات کردن دشمنانشون کاری کردن که مردم خودشون را عبادت کند یعنی این انتقام را به این صورت به گمان خودشون از اونها گرفتند لذا ایشون می خود اون فرد را در کارخانه الهی دخیل میدانستند بر خودش حجوم آوردند و از او حاجات خود را خواستند و طلبیدند لذا این نتیجه بود نتیجه سخنرانی جنات و بعد از اون چند کلمه با اهل مکه حال الله عزوجل راید خلاصه و نتیجه این سوره را به زبان رسول الله بیان می‌فرماید که شما این گونه اعلام کن از تمام این سخنرانی این نتیجه را می‌گیریم قل انما ادع ربی ولا اشرک به احدا بگو جزی نیست که من محمد صلی الله علیه و وسلم ادع ربی رب را فریاد میزنم. من در حاجات خورم در مشکلات خودم فقط خدا را صدا میزنم زنم ولا اشرک به احدا من شریک نمی گیرم با خدا هیچ احدی را قل انی لا املک لكم ضرم ولا رشدا بگو من محمد مالک نیستم برای شما ضرر و نفر رشد اینجا به معنی نفس نمالک نفس نمالک ضرر هستم قل انني لن يجيرني من الله احد بگو هرگز مرا پناه نمیدهد از عذاب خدا هیچ کسی اگر خدا بخواد من مؤاخذه بکنه پناه دهنده ديم ندارم ولن اجد من دونه مولت حدا و بجز الله هیچ ندارم بجز خداوند هیچ پناهگاهی برای من وجود ندارد الا بلاغم من الله ورسالاته مگر اینکه من وظیفهم چی هست؟ پیام خدا را به شما می رسم بلاغم من الله یعنی پیام رسان از جانب الله هستم و رسالات و رسالت هایی که خداوند به من داده مسئولیت که خدا به من داده که به شما برسانم من اون کار را کنم لذا؟ هر کسی از نافرمانی من بکند منتظر عذاب باشد ومن يعص الله ورسوله رسوله هر کسی نافرمانی الله را بکند و رسولش را در باب توحید فإن له نار جهنم خالدین فيها ابدا همانا برائع آتش جهنم هست همیشه در آتش جهنم بصورت عبد ماندگار میشه حتی اذا رأو ما يوعدون مطلب این آیه این است که ای مشرکان ای قریشی ها شما اینجا متوجه نمیشید این قریش اینجا متوجه نمیشه مخالفان رسول الله در دنیا متوجه نمیشه که خدا داره چی میگه بیشون اما وقتی که عذاب را ببینند اون چی که داده می میشوند ببینند اون وقت میدونند که واقعیت چیه اینجا به پیغمبر میگفتن که شما هم جمعیتتون کم تره هم تر استید از ما اما وقتی به آخرت برسند جمعیت را ببینند قوت و ضعف را ببینند می دونن که خودشون ضعیف بودن. حتی اذا رؤوا ما یعادون حتی وقتی که ببینن آنچه که وعده داده می شوند فسیعلمون من اضعف و ان قریب می چه کسی زیفتر است از نظر ناصر یاور اون یاور ندارند یا شما ندارید و اقل و عددا اون وقت میدونن که عدد چی کسی جمعیت چی کسی کمتر. اونا اونها اینجا می نازیدند که ما جمعیتمون زیاده است شما یک مشتی هستید قل ان ادری اقریب ما عدون اینجا در واقع جواب سوال یونهاس اونها میگفتن خب این قیامت کی میاد کی میاد زمانش را به ما بگو تاریخش را به ما اعلام کن خدا جواب داد قل این ادری اقریب ما تو عدون ان ان نافی است بگو من نمیدانم آیا نزدیک هست آن که شما وعده دادم می شوید ام یجعل له ربی امدا یا برای اون رب من مدت طولانی گذاشته زمان طولانی گذاشته نمی دونم چند روزی دیگه هست یا چند سالی دیگه یا چند صد سالی دیگه من چون عالم الغیب نیستم عالم الغیب خداست عالم الغیب ای هو عالم الغیب اون عالم الغیب هست اون داننده غیب هست فلا یزهرو علا غیبی احدا بر غیب خودش کسی را مطلع نکرده یوزهرو به چند معنی میاد یکی ظاهر کردن یکی غالب کردن یکی مطلع کردن کسی را بر غیب غلبه نداده کسی را بر غیب نکرده پیامبران پس چی پیامبران غیب نمیدانند پیامبران خودشون برای اینکه ماموریت خودشون را به نحو احسن انجام بدهند برای اونها فرشته تعیین شده که اونها را کمک بکنه الا من ارتضا استثناء من است لیکن اما کسی که خدامند او را از رسولانش بپسندد مرضی خدا باشد من ارتضا من رسول هر رسولی که مرتضا باشد مرتضا یعنی مورد رضای خدا باشد و خدا او را برای رسالت بپسندد انتخاب کند فإنه فا يسلك من بين و ومن خلفی رسعدا برای اون پیامبر خدا تعیین کرده کسانی را که مأمور او باشند يسلك من بين يديه می خدا از جلوی اون پیغمبر و از پشت سرش رسدن یعنی نگهبانانی محافظانی فرشتهایی که او را دنبال میکنند او را رصد میکنند او را تعقیب میکنند چرا تا اینکه این فرشتگان کمک بکنند در اینکه اون پیامبر همونطور که عیسی براش روح القدس تعین شد هر جا میخواست خطری برای عیسی باشد جبرائیل نمی گذاشت پیامبران فرشتگان هم همچنین ليعلم این علت یسلوکو هست خدا چرا این فرشتگان را اطراف پیامبر تعین کرده که ظاهر بکند علم خدا که علم دارد که ظاهر بکند که نشان بدهد که قد ابلغو رسالات ربیم پیام های رب را رساندند هرچی ماموریت و مسئولیت از طرف پروردگار بود رساندند و احاط بمالدیهم و احاطه کرده آنچه که نزد اون یعنی خداوند از یا ملائکه اطراف پیامبر را احاطه کردن و احصا کل شیع اعداد، هر چیز را حفظ فرموده، هر چیز را احاطه فرموده از نظر عدد یعنی هر کاری میشه در احاطه و در احصاء رب العالمین انجام می‌گیرد.